و آله القیبین و خاطرین المعصومین و لعصبه اللهم اصناه بس تعریف نصر رو گفتیم در واقع از معنی ازاله هست مصفت و گل چون استاد در محاضرات می بوده من توی سابقا تو, تو ذهنم بود بلکه مراجعه کردم دیگر کم مستقیم گفته شده نصر در واقع اجمال دو معنی استعمال شده یکی معنای ازاله به اعدام یکی هم به معنای نقل و تحریب تحریب کرده البته سعی هم خودیه خیلی این وحث نمیشیم سعی هم خوده که دوم رو ارجاع به اول بدن لکه امضا اصاف هم این حیث المجموع مشکله مگر این واقعا معنای جامعی در انتظار بین این دوتا یعنی اینطور نیست که در نقل و تحویل حسن اولین معدوم بشه در نقل و تحویل اهم امکنه اولین معدوم هم نشه مثل کتاب چون به همیستان در کل و باران هم آمده و مثلا انسان یک کتاب رو به یک ورقهی منتقل میکنه یه یعنی نصفن سخش کتاب نست این معناش مهدوم شدن اولی نیست حالا در پناسخه ارواح شد مثلا بگیم اولی معدوم شد روحو رو ما در این جسم دیگری اما در قسم صاف کتاب صافن اینجور نیست و از واقعا چون دیروز عرض شد نست رانه ازاله این هم معروف هستم که در محاضرات و استادود من مطلب صاحب خودمه میرم بلید نیست دو معنا داشته باشه هم یک جوری یک نحری از ازاله مثلا من حالا برای صدق بکنه و الا در وقت عرب به معنای نقل و تحویل هم هست و همین هم منشه شده که در شریعت اینجور تصویر میشه که گاه و آن نهست تحریله مانند سخم آیته این یک نوع نه این که در حقیقت این ازاله باشه و دیروز یک صحبت اجمالی راجع به نصف شد از که این نصف رو علمای ما و علمای اسلام به طور کلی در جه های مختلفی آوردن تو علوم و قرآن آوردن و توی البیان شرکی دارن و معارض رو یهود و نصارا درستن تو زهن هم معروف یهود بود و بهشون نصارا رو بذارت البته مرموم استاد به نقل از استادشون مرموم های انتقاداتی به یهود کردن که در یهود هم در تورات فعیدی عبدی از احکام نفت شده مثلا از آیاتی داره که فرسون در باب نو سربازگیری اجباری که برای خیلی اجتماع بود اول 30 ساله بود بعد 25 ساله بعد 20 ساله الان فکر میکنم 20 ساله باشه فکر میکنم البته تا اونجایی که من یاد دارم حالا منحسل که فکر نمیکنم اما این رژیم قاسبی که در فلسطین هست این صحیح نیستایی که حاکمه یکی از احکامشون ل... الزام سربازی سربازگیری است، یعنی جندیه الزامیه و بقوله آیا هم برای مرد هم برای زن فکر میکنم تو دنیا منحسل بفرد باشه یا کم باشه در دنیا که سروازگیری از زنها هم الهزامی باشه اما این هست که کشور غیرزهی اسرائیل اونجا حتی و هم سرباز شدن اجباریه. بعد سرباز سرواز که میشنه اونجا سنه چه سالی ای تحت خدمت باشه ازا بایی که عدد کمی میگارد پنچین گیرون خوردی شادی ارتش نسبتاً سنگین دارن مثلا اون عدد خیلی سنگین ارتش بگیم مهما ارتش سنگینه شده از مجموعه احتیاط و احتياطی رهیا. الان که شما خان این مطلب در خود تورات نسخ شده. مرغ استاد از کتابی از اون از علمای هند به نام الهاه در کتاب الودائالدین المصطفا نوشته مرغ آیه مناهی بلاغی آی بلای واقع شخصیت بزرگی است که اونجاست الودائین استاد شایع میشدن در کلامین ها و دو سه کتاب خیلی دقیق داره و ایشون خیلی زحمت در تورات و انجیل کشیدن مثلا به تورات کاملا مصندره در کتاب‌هایشون اخیراً مجموعه آثارشون چاپ کرده انصافاً نثار به خودش حتی مسئول بیان دریک از نوشته هاشون چرا راجع به باهیت و باهییتا مساله در درو که دقیق نیست اما انصافاً دلایل به قاطعی ایشان می‌کنه و زحمات بزرگی که ایشان رضوان الله تعالی کشیده 5 6 تا مورد رو از مواد نسخ در تورات رو از استادشون گرفتم بعد نوشتم باز اونجا مراجعه کنم البته الان وضع منهج علمی روش علمی بیشتر این است که اعتفاق یک طرف نشه یعنی خوب بود که حالا من نمیدونم در کتاب اون اظهار الحق یا در کتاب حل قدالا دین و داشتم مراجعه نکردم اما اونیکی رو ندارم نمیدونم در اون دو کتاب آیا متعرض تفسیرهای خود یهودی هم شده یا نقاید من این طور یعنی الان طرحش علمی نه که اگر تورات مطلبی رو نسخ می‌کنه به عنوان انقضای تورات برخورد خود یهود و علماییت بود و احبار یهود هم باید مثلا متعرض بشه که بود یهود با از این آیات چه جواب بدن مثلا چه آبی داشتن در اینجا جه الان که ماخان مسئله نسخ در اسلام از اول مطرح شده در خود قران هم اشاراتی بهش آمده مانند سخ من ایت و نون به خیر من ها گفتم بعد همان دیگه ادله‌ای فقط مستقل دارن عاد و دوست دو نام بودن بیش از این واقع در, در شیعه هم داریم اون حسب بحث سنت نیست اگر نوص بالا را که اگر مثلا چاپش بگم ولی مرحوم صدرالدین عبد الله اینطور این طور نیست که من حسب بحث سنت بشه و انصافا ایشون زحمت زیادی کشیدن مرحوم استاد مقداری از آیات رو متعرض شدن و خودشون هم میدونن که این کل آیات نیست آیاتی که ادعای نصف شده بالای ست تا ست تا, ست تا, ست تا در این, این کتاب نخواست نخواست آمده و هلون مجرور آیات کم و زیادی داره اینطور نیست که یک نواخت باشه به هر حال ایشون سی پنج آیه رو متعرض شدن و آیه آخر که نجده باشد تقریبا قبول کردن به اون معنا به معنای دیگری قبول درکن این راجع به خلاصه نظریشون انصافش اینی که خود من فکر کردم که مسئله ساده و حالا که مراجعه میکرد نه خیلی کار داره. نوز انصافه مسئله نسخ کار داره خود من هم انصافه هم توی این قصه کار مستقلی نکردم انصافه خیلی کار داره هم به لحاظ خود تصویر شرح این نسخ و شرح هایی مبارکه به هم به لحاظ مصادیق و مواردی که گفته شده هم در آیات هم در روایات کار زیادی میخواد فقط ی می حس می کنم هنوز اون کار لازم نشون عرض کردن در کتب اصول اهل سنت، در بعضیشون به مناسبت قرآن در بعضیشون حالا شبیه مناسبت قرآن بحث نصف و مفصل دارن در کتب اصولشون و یه جاهایی هم به مناسبت دارن مثل هنینجا تو بحث تخصیص دارن که الان متعرض میشه. اما در اینجا مرموم استاد متعرض دونان اهم شدن بین نسخ و تخصیص و مراد از دورانه هم بین نسخ و تخصیص اصولا قاعدش این طوره یعنی موردی باشه هم صلاحیت داره نسخ باشه هم صلاحیت داره تخصیص باشه و ما چه اصلی داریم چه قاعدهی داریم که رو مقدم بکنیم یا رو نکتش چیه به اصطلاح و چه اساسی ما رو مقدم بکنیم پس این بحثی به که الان ایشون مطرح فرموده دوران عمر بین نسخ و تخصیصه که در کتاب اصول ما هم آمده اما معلوم نیست من که پیدا نکردم اما یک جای دیگه مگر باشه در کتاب احرسانت خیلن پیدا نکردم دوران امر بین نسخ و تخصیصه اونا یه بحث دیگری دارم اون بحث دوران نیست اون بحث دیگرش توارد بین نسخ و تخصیص سابقاً هم وقتی که درس سویم و احرسان بود یه حوارق چه فرق بین نص و تخصیصه اون بحثی از این بحثه این بحث استاد و بزرگان دیگه امجوتاریخا دیگران متارسمه ناینی این دوران هم بین نص و تخصیصه پس ما بر این دو بحثه یک بحث اینه که اصولا نص کجاها هست تخصیص کجاها هست مثلا در این جور جاها نص هست تخصیص نیست تخصیص از نص نیست این یک مسئله، مسئله دهم که نه؟ اگر دلران شد شود نفهمیدیم آیا حمله بر نص بکنیم یا بر تفسیر چه کار باز بکنیم؟ آیا تفسیر مقدمه یا نص مقدمه؟ کدوم یکی رو؟ و بحثا بحث هم در اینجا چرخه همه بحث‌های قبلی ابتذآهن در ابوامر اورشی، موالی اورفی اون وقت اگر در شریعت مقدس خصوصیتی داشت از موارد موالی و عرفی خارج میشیم. و همیشی نه از کردن در مبارس و اصولی ما عادتاً بحثای ما اقتداعاً توی موالی و عرفی و در همین مسئله مردم استاد در یک صورت مسئله فرم در موالی و عرفی هم بر نصف میشه اما به لحاظ مجموعه روایت شریعت هم به بر تخصیص میشه دقت کرده پس بنابراین روش بحث رو هم در یک مواردی باشه که دوران هم بین اونها بشه دو ما با چه روشی بگیم اهده ما هم ببره اهده ما بشه نه اینجا تخصیصه یا اینجا نسخه این علمه و نقطه دوم هم روش بحث روش بحث و عرفیت الا در بعضی مسائل خاص نقطه سوم هم است که ما در نحوه برخورد با این مسئله گاهی باز ممکن است به همون قوائد و عرفه آم مراجعه کنیم و گاهی ممکن است به قوائد قانونی مراجعه بکنیم مثل بقیه موارد مراد ما از قوائد و عرفه مثلا یه قاعده هست که هرچی اغلب باشه اول نویل فقشی به لهم در اغلب یه قادر و عرفیستی به فقه نداره به قانون نداره خب ادعا شده که در موارد شریعه، و در غیر شریعه، اصولا تخصیص از نسخ بیشتره ازا بخواد صورت بندی بکنیم به طور کلی تخصیص در اصطلاح بیشتره اگر این راه رو پیش گرفتیم دیگه این راه راه عرفی و قانونی هم نیست پس ما هر زدران هم به این و تخصیص شد نیاز به صور نداریم همه جا میگیریم همین بر تخیص میشه به کتت دیگی. کم اینکه از اون طرف هم باز یک راه قانونی عددیی رفتن. و اون راه قانونی که اصولاً به لحاظ قانی کار به عدد و آاب احتمالات اونمثلن ۵صد تخیص از۵ و۹صدالا این مورد درم و 9۵صد این کار نداریم. ما کار قانونی داریم به لحاظ قانونی اصولاً نخ. معونش بیشتر تو قانون تو نصف برداشتنه قانونه هم معونش بیشتره و هم به اصطلاح صلاحیت بیشتری میخواد به اصطلاح امروز میگن مجلس مؤسسان مثلا فرصه مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی به تنهایی کافی نیست گاهی نصف و مثلا یه مجلس ترسیسی یک مجلس مؤسسان مثلا یه مجلس خاصی که کار اون بازنگری قانون و در داشتن بعضی از مواد قانون به اضافه کردن که اصطلاحاً ارگهاشون مجلس تگزیسی ایرانی ها مجلس مؤسسان مجلس ممکن اون که از سازنده خبرگان باشه نماینده مجلس باشه وزرا باشه این ایده رو قرار میدن که اینها کار یعنی اصولاً نفس همیشه در اتکاد قانونی کار چنگین داره تا تخصیص در اتکاد قانونی چون در نقش برداشتن یک بکره اما نه. از تقریباً جنده شرذره داره حدودا تا مثلا فرض میگه شما با همه کشورها میشین معامله بکنید قانون الدولي با, با, با کشور آمریکا مثلا نمیشه ممکنه که این مشکل نداره اینکه یک کشور یا دو کشور رو خارج کردن این مشکل نداره اما وقتی میگه اصلا شما قانون تجارت خارجی میگه لغه بکنه یه قانون که مثلا تجارت خارجی باشه این قاعدتاً مشکله یعنی به اصطلاح معونه زائدی میخواد خصوصیات بیشتری بیشتر میخواد پس این نکته میشه این نقطه قانونی پس یک نقطه گایی نقطه ارفی گایی نقطه, نقطه قانونی در نقطه قانونی ما باید جهاز قانونی مراحات بکنیم مثلا در این نقطه قانونی میگیم ما تفسیر نه فقط مسئله بیشتری اصولا راحت تره چون جنبه تفسیری و شعر داره. اما نسل چون زواد قانونه چون برداشتن قانونه لغو قانونه قاعدتا هم معنی بیشتری میخواد هم نیروی بالاتری میخواد هم تنوع بیشتری میخواد اعلام معنی مقدماتش فهم میکنه نسل و تخصیص در این جرس پس به لحاظ قانونی ما همیشه میگیم هر جا دوران نسل و تخصیص شد اصل قانونی برای این که تخصیص باشه چون نسته که عمل ایدمت آرفی که خصوصیاتی میخواه همتا که صاف صاف مثلا بگیم اینجا احتمال نست هست پس نست باشه این خیلی بریده با اون خصوصیات قانونی نیستازه اینم یک راه حالا من قبل از در چهر کلمات مرموم استاد راه ها رو بگم یه راه دیگم راه هایی که مثلا مرموم محقق اراحی رو بگم و خلاصی اون راه اینه که اصولاً تخصیص چون یک جمع مقبوله یعنی تخصیص این است که عام را هم به واسه می‌کنید خاص و به مفسر و شارح عام. این مشکل نداره. اصلا معلومه که ما من عام من لاخت خاص. این مشکل نداره. تفاهم می‌کنید؟ یعنی به عبارت دیگر با حمل عام بر خاص اصلاً هیچ نمره تاروزی مشکلی پیش نمیاد. این دو تا با هم برخورد نداره حالا گفته اکمل لاتوکم فوسا الغلام. بعدم بعد از اونم میگه اکمل العلماء. و احتمال داره دومین نماسخ باشه که حتی فساق علما با احتماله اما این احتمال که ما وارد بشیم و بگیم حتی فصاق علما حکمشون برداشته شده و تبدیل شده به چوب اکرام این به اصطلاح یک معون نه فقط معونه ظاهری میخواد این از شبیه مرجعیات جهادی است میگه این کلام هم به واسطه ای باشه این قائل معاصر در تا ما مرجع دلالی داریم تا جمع دلالی داریم نوبت به مرجع جهتی نمی رسه. و ما تا جمع دلالی داریم نوبت به نسخ نمیرسه نسخ مثلا مثلا همونه فرض نمیکنه بگه اول حکمی تو رو در میاتو برداشتیم این یک نکته منونی زائدی میگه اما خود جمع بین عام و خاصی امر قانونیه مش نکته خاصی نمی کمال تلاوم رو با هم دارن. لذا خود تقسیز چون یک تا رو اصلا بر میداره ولی اون تا آرز تا عارض بدوی میشه غیر مستقر میشه اصلا تا بین آم و خاص نیست آم رو ما تصرفی در خاصی تصرفی در آم نمی کنیم نیازی نیمیم که خاص رو الها بکنیم مثل مرجع جهتی در مرجع جهتی شما یکی رو الها میکنیم دیگه چونگه این روایت با من تغییر سادر شده پس باطل بعد اون حرفشون اینه نصف از قبیل مرجیه جهتیه میگه یک دلیل باطل یک حکم باطل یک حکم صابق اما تخصیص میگه هر دو صابق مثل مرجیه جهتی اگر شما آن مخواست داشتی میگه هر دو صابق تا آروزی با اونگو نادفن اونگه بردی من علمان دو گفت لا سکن فساق نیست. با پس دایی نداریم که کاری بکنیم بگیم یکیش ثابت یکیش منسوخ یکیش باطل یعنی در آن عام بین این دو تا خود دقت بکنیم بگیم هر دو قبول تخقیق بگیم نه یکیش قبول یکیش قبول نه من موازیان گرتن در ارش قانونی اولی اولات هر دو قبول اولاه است این هم چی شد قاعده قانونی شد روشن شد ان شاء الله حس در مسئله درآمدهای نصاب تخصیص یک دره صحبت صحبت عرض عام و همون حساب احتمالاته یک دره نکات قانونی است این راجوی این مگه حالا برگردیم یه اجمالی از کلمات و استاد بگم شدیم ولی این بحثم خیلی در ثمره نداره بعد دنباله بحث رو بگذارنجیم اما مرحوم استاد ایشون جا اینجا چون یه نکاتی رو در نظر گرفتن، صبر دروران رو پنج رسیم گرفتن، چون سریعا شانس ما امروز این باز تفهی 224 هم چاپ من بعدم عربه این باز تفهی 224 هم پیدا نکنه این 234 هم این چاپ, من این هم. ای هم. چاپ این هم. هم شده هر سون این کتاب چاپ شده هر سون این چرازی چکوهات این چارت اشتباه در آمده. اون داره باز چون زیادشه باید یک چک درستی داره اشتباه کنه. بله در این صفحه 224 اش هم متأسفانه شده چون یک کلامی رو جزو آن کردم بعد از اشقال شیخ انصاری من الان نمی دونم ایشان دقیق به كلام شیخ چجوری فرمودن و چطور بر ایشان کرده. اما به هر حال اینو خداوای مواجهه کنم میگه که من موافقم. اون نسخیلی هم نداشتم که نگاه کنم ایشون در این مسئله برد آمون و خاصم و دارن انبینه تخصیصه و نص فرموندن پنج صورت من پنج صورت ایشان رو سریع احرض میکنم با نتیجه گیری ایشان صورت اول در جاییست که اون خاص متصله و آم باشه ایشون فهمیدن در اونجا نصد معنی نداره قطعا تخصیصه معنی داره که آدمی حکمیگی بلاب دارن این ش این سوارت سرفر اما سوارو همینجور اگه یک بول صدا منه بول از شما نبینه غیرندگی همون یک این مسئله اصولا سوار دهران نیست اصلا اینش دهران نیست چون شن داره که بله بل لا يعقل جعل الحكم و او في آن واحد و دلیل فارق خب اذا لا يعقل دیگه دهران امن نیست لا يعقل وقتی غیر معبول شد ظاهرا اشتباهی پیش اومده و هر حال اگه غیر معبول شد جای sohbat درران نیست درران از کردم عادتن اینجوری که این طرف هم ممکن باشه اون طرف هم ممکن باشه ولی طرف ترجیح بده ولی درران اینه و ان من تعالی تعالی میخونم از کتاب اهل سنت اصلا اهل سنت این علامت قرار دادن که اگر دلیل دلیل خاص ب... متصله به آن بود این قطعاً تثبته و نسخ بحث دوران نیست بحث تشریفه یعنی بحثی اینه مواردی که جای تخصیص هست و جای نزخ نیست حالا به هر حال که شون به عنوان دوران نوشتن این صورت اول پس در صورت اول تخصیص هست به این موارد که اصلا نزخ معبول نیست نه در خانه میزه قطعا تخصیصه یعنی احتمال نزخ وارد نیست این صورت اول صورت دوم که ایشان متعرض شنید عام می بیاد، و قبل زمان عمل خاص بیاد. آیا در اینجا ناسخ هست یا در اینجا به اصطلاح پرسیده؟ مثلا گفت اتم ال اولامه یا بعد از روز سشنبه هست. روز پنجشنبه قبل از وقت عمل. البته این مطلب حالا قبل از وقت عمل. این تقریباً مثلا از به اصطلاح جایی بحث نیست مطلب دوام فرضی. خیلی خواله خبر از وقت خاص همه در اینجای مغزاری اشکال کردن بعضی قائل هستن که بله ممکن نیست که ناسخ باشه چرا چون این ناسخ باشه هنوز فعیلیت پیدا نکرد و خب رفت باشه بعدم آیه نایه اشکال کردن که نه ممکن است ناسخ باشه معلومای خویش به معلوم ناینی اشار کردن من خود من نفهمیدم نتیجه نهایی این صورت چیه چون در صفحه 318 فرمان تصینه در فنهات المساء ان جعل الحكم علم به این بانتفای موضوعی ببخشید میدونه که نخواهل شد به انتفاع موضوعی و شرطی فی خارج لا یمکن من الحکیم المنفتبه الی مندون طرح انفیداله و این و نواهی اصلا امکان نداره که به اصطلاح حکم رو میدونه که مثلا فصاق علما این از اول مثلا حکم باشه بدنست بشه ظاهرش این هم اینه که ایشون مخواهد بگه ظاهرش تصریح ندارد ایشان، لیکن ظاهرش این هم که بله قاعده به تخصیص ظاهرم و که از این لایوم که معلوم میشه نصف صورت اولا میمونه نصف امکان نداره باید تحسیل باشه مسئله سروم صورت سروم همون صورت معروف است که آن بیاد وقت عملن بشه بعد خاص بیاد مثلا اینگه با اکمال اولان وزید ما با بلا سفیان خود ساقه اولان اینجا هم آیا ناصف هست یا مخصص اون چون قبعه تحقیق باید از وقت حاجت داره می توانیم بگیم این مخصص شما مخصص بیانه جنبیه بیانی داره پس باید ناسخ باشه این ایشون نشه کلده ها به جماعت رو که باید این باشه حالا این جماعت رو ایشون اثنه بازن که آیا از سونیان یا اشیاء ها هرون استاد بس خودی ایشون فرمودن که این جماعت وقع اوفل اشکال الا این جماعت کی هستند که بقیر افرش کنن خودیتون اعلمه به اضافه که ایل کتاب و سنه حیث و این مخصصات ها الگی صدرقن لعیمت لعطها بعد وردن بعد حضور وقت لعمله ها، این وقتی کار مکنی با روایات ملتظر بشین که روایات احلبی ناسف آمومات کتاب و سنت، تن خیلی عجیبه حالا غیر از اینکه که حصولا فقط از تا زمان رسول الله بعد از رسول الله محبول حتی اگر بگیم نهستم به اندازه رسول الله باشه اینقدر این زیاده به کسید به درجه ایست که التضام به این مقدار نهستم بعد ایشان یک شرحی به که جداره به خود ایشان نظرشون اینه خلاصه شرح ایشان اینه که میگه بله این مطلق طبیه خلاصه مطلق این مطلب قویه لیکن قبهش از قبیل علت تامه نیست تحصیل بیان از وقت حاجه قوی هست لیکن نه به نحو علت تامه برای قبه به نحو مختزی مرادیشان از علت تامه مثل ظلم ظلم علت تامه است برای قبه و لذا میشه ظلم تصور کرد و قوی نباشد و مرادیشان از مختزی مثل صدق و کیز. چون یک تفسیر مشروعی هست که در افعال برسه رجمه یا علت تامه هست مثل خوبه ظلم یا مقتدی مثل خسن صدق و خوبه که یا اصلا مقتدی هم نیست مثل خود زرب کی نفسه نمیشه بگیم احتضای خسن داری یا احتضای خوبه داری اگر زربانان ظلم بود قدیه اگر زربانان تعدیب بود هم. این بندی بلیه در دارن نظر اغسطاد به همین تحصیم بندی مشروعه پس بنابراین ایشون میگه من تحصیل باید از وقت حاجت قویهه قبول داریم و این که مثلا کلمات همه مخصص خوشه چون بعد ست سال سال و سال, سال دوارد شده و این خوبه داره خوبه برای از وقت حاجب داره. ایشون چگه مفصل نمیستن بیگه آن مراسط کنم من داده بشه. ایشون اعتراضش که این قوم علت تامه نیست برای قوم این تعبیر بلکه مکتزی است بخ قائدشون اینه که اگر علت تامه بود انقلاب و انقلاب قومه پیدا نمیشه انقلاب پیدا نمیکنه اون خوبه بس اگر ظلم قدی بود ما نداره موردی که ظلم باشه و حسن باشه انقلاب به ذاتش پیدا اما در که مکتزی باشه ممکن از منقلب بذاتش باشه مثلا صدق حسنه ولی که در بعضی از موارد تل قبیح میشه تل قبیح در بعضی از موارد رو مسائل خاصه تل حسن میشه ممکن است در موارد مختزی و عروزی به عنوانی که محسن باشه یا مقدمه باشه این اختلاف پوشش می گیره تاثیر برن از وقت حاضر از این قضیه اصل مختزیه علت تامه نیست یه مصاله‌ای بوده برای اینکه مؤمن در تکلف واقع نشه برداکی بر که شأن اهل به طه و جمعه ما به چه؟ طه مسئله امامت اون خداوند متعال در نظر گرفتن که بیان احکام به وسیله ائمه متأخرین بیان شود. نگاهمید؟ بعد از فهمیدن خداوند قدر روی بعض روایات ان احکاماً بدیع اند صاحب الامر جل الله تبارک و تعالی. حالا من احکام باشه شده در اثر گذشته زمان و انحراف فکری یا این که نمای اونایی که بیان کنه حکومل واقعیه نیست و این سالا احکام بوده که اصلا بیان نشوته. چه چه می‌دیدی؟ برا خودشون ذره وجدان ن بوده، قاغول چیه؟ اکثرن شعبانی نسبت به نظر احوال میگه من مثلا کوفه مقدار از اصحاب امام صادق بود، عدد زیادی بود، از من نشون، هر دوران اصحاب امام باقر کم بودن؟ از من نشون حدیث، بودن مجزا به ذا، فعلا ترین گونه اکثرها به نهاد سر رسید، را به مولا من زود صادقا هسته باقیم واسه لازم نیست که احکاما بقیه دهن بلی ما خبشه که در راویه شبای کرده دستی بوده تحریدی بوده خطا کرده بعد ترجمه کرده بعد نهوی کرده ارد لازم نیست که حکاما دیگه باشه این هم خلاصی جوابی شد خلاصه در صورت سرم هم محبوم استاد قائل هستن به تخصیص صورت اول یه نص محبوم نیست باید تخصیص ب سوره روان ظاهرا اینطوره متن رو درست اینطور می تخصیص میدن صورت سوم دوران لکن تخصیص رو اولا میدن صورت چهارم دو صورت و پنجم هر دو عکس دو صورت دوم و سومه درس دوم و سوم آمدن خاص بعد از آن بود در صورت چهارم و پنجم آمدن آن آم بعد از خاصه مثلا گفت لا س ساغل ها گفت عاکمل قلم ها. اونگاهی اول خاص بعد گاهی به اکسه. این صورت چهم و پم بله باز هم همون دو صورت دوم و سوم لا که به عکسش اول خاص آمده بعدام آمده. در صورت چهار نتیجه ایشان همون تخصسییص. این صورت چارم یک مقداری به نظر روشندتر نوشن لا مقتضی صورت چارم این است که اول خاص بیاد و قبل از وقت عمل آن بیاد این صورت چارم مرادشون در این نشن لا مقتضی یعنی نصف اصلا اصلا جای نسخ نیست الا لغو میشه یا حکم جل بکنن و وقت عمل نصف لغو بشه شد. ترهش کنه این لغو میشه پس ظاهرا صورت دوم نظریشان این که مقتضی نسخ نیست پس صورت اول و دوم و چهارم دوران نیست این دوران سوریز دوران نیست در این سه صورت خوک میشه که نسخ امکان نداره باید تخصیص باشه صورت پنجام عکس صورت ثومه اول خاص میاد بعد عام آمده مثلا یک خاصی در زبان رسول الله میاد در روایت رسول الله خاص میاد در روایت امام صادق عام میاد بعد از وقت آمده اینجا ایشون به همون بیان قبول کردن که جای تخصیصه جای نزد و متاسفانه بیگه نزدار این کتاب ما چاپ نشده کمی هم میشون طولانی تودانی باشه که همشون خیلی ما نداره من وارد این بحث نمیشم بعد تمند نتیجه تو فی نهایت المطاق ان هو تخصیص فی جمیع صور ان متقدمه ولا مجال لتوهم نسخ فیشه ای امن ها این خیلی ها. عبارت زیر هم باید لا تخلوان ترجمه مجال شه هست توی اول و دوم و چهارانشون و جای تخصیص جای نفس نیست سومو و پنجم مجال که هست مثلا ایشون که زهر جماع هستن تو من این جماعت نشون از علمای ما مثلا که از علمان ما باشه که وائل باشه که روایت امام سادر که خاصه ناسخه مثلا کتابه یا ناسخه سنت رسولله من الان تو هم نیست مثلا چون ایشون مخلی روایات احلی بیت رو مطرح کردم از کنم این خلاصه نظر مبارک ایشان پس ایشون پنج صورت کردن که نکات خاصی داشت از وقت طبق اون تصوری رو که بنده آن خدمتون رو کرده چون ایشون در سه صورت قاعدن که اصلا نصر معقول نیست قاعدتا ایشان باید این سه صورت رو از اون دو صورت جدا میکردن دیگه دورانی مفرح نیست معقول نیست دیگه دورانی مفرح نیست در اون دو صورت دوران هست اما در سه صورت دیگهش دوران وجود نداره و ظاهرن حالا شاید علم مهمندله یه مقدار بحث از چون توی عباجیشونون که واضحه که مییم چین چیزی ما هم در خارجسمجا که میدونستیم ایشون خیلی لهل مراجع مسده را عامه نبود احتمالا یه مقدار بحث از ساده را گرفته شده یه مقدار رو از ما گرفته شده یه مقدار تو مسئله خلط پیش آمده تگام خلفی پیدا شده احتمالا و کی به ماکار از هم خدمت با سعات آنون را چه به این مسئله یه روای این که اینها یا مخصص کتاب این اصطلاح یا نستجی رو به الله ناسخ کتاب یا مثلا زهرد کماعاتون ال نست این صاحب هم خب مطلب درست نیست من صادقا یک توضیحاتی رو ارز کردم این مسایل روی که الان ما در فقه شیعه به عنوان ناسخ میبینیم یا مخصص میبینیم توفقه هر سنت هم هست آنو که هم فقط کنه شیعه هست من این رو عرض کردم مثلا روایات داریم که سواب خیلی مستحبه او خیلی زیاده لولا ان اشق الا امتي به بالمسواک خب داریم تو این جامعه داریم فراوان ترکیل رو میسواک کردن از بعضی مراد ادعی از علما اهل سنن تو محرم ازال مسواک نکن هیچ کس هم هر سنت روزی ما هست ناسخ به عنوان یعنی شکلی اما وقتی به موضوعی مذ... دارن مثلا موضوع ندره میکن ادهیشون این مسئله را از راه نصر تخصیص و نصر و از این حرف رو بارد نشده هم. این رو از راه جمع بین حضرت من اینکه این فقیح آمده تخصیر زده این از راه جمع بین حضرت چرا؟ چون در اون دلیل آمد که خلوف فم بوی دهن بر سائم اندالله احب و منتیب میگه تو اگر نصبت بزنی، اون بوی بد میره پس به خاطر حفاظت و بوی بحث که قطعاً بوئند الله احب ولا الله من المس من الطيب من المس این مسواخ نزه این تخصیص نیست این به اصطلاح تخصیص مصلح نیست این به این معنی است که میگه جمع بینین ادله این, این اختصار رو میکنه خب میشه میگه من بخاطر جمع بین ادله این اختصار نمی مسواک دادن مطلقاً مستحب چه سائم باشه و سائم. حالا اگر سائمی بوی بد در دهانش بود، اونم نزد الله احبب. این معناش اینه که ایجاد بوی بد یا ابقاء بوی بد باشه. خب متکفل موضوعش نمی‌شه. حالا ممکن است یه انسانی باشه مسواک بزنه با زنگ بوی بد بده. خب روايت نیست. هر ذره به اطلاع خودشون محدود اون رو باید دیگه مطلقاً حتی برای سائم. این رو باید میگه اگر بوی بد داشت ناراد نشه چرا افتی به هم دارم؟ چرا تخصیص بزنیم؟ چه نظری به هم دارن چه شرعی به هم دارم؟ پس بگیم سواق مستقن مستقن دارم ساهم و غیر ساهم اونم بو ناراد از بوی بد نشه اندالله عحب و مهتی. اما مفاد این نیست که انسان ساهم این بوی بد رو نگه بداره مفاد حدیث این نیست اصلا ده. پس این بحث بکنید گاهی این نسخ نیست. این که نسخ باشه یا مثلا تخصیص باشه. نه نسخه نه تخصیص هست اینها بست... مثلا گفتن اگر شما بخواید این مثال صابرم عرض کردم خمر رو خودتون نمیتونید بفروشید. از ابو حنیف نسخ رو بده یک مسیحی باز بفروشه اشکال نداره. مشهور اهل سنت اونم میتونه بفروشه. از مسیحی هم نمیتونید بخرید. به مسیحی هم نیمتونی بسوشی اگر دادین مسیحی بسوشه پولیشو به شما بده اونم نمیشه. خیر. اما اگر شما دیدین یک مسیحی جلو شما بود برداشت خمر فروخت به شما پولش دار مدیون بود پول مخواست به شما بده جنسی هسته خمر فروخت بازم نمیشه اون دقیق بکنم بازم نمیشه مسیحی جلو شما شراب فروخت به پنج تا تتو پسو رو به شما بسوشه میگن درست شد؟ اما اگر مسیحی مدیون بود به کسی درد میکنه؟ یا به شما مدیون بود شراف روح پول دین شما رو داد اون اشغال نداره آو چه فهم میکنم این روایت هم داریم این خیال هم مثلا, مثلا تخصیصه این تخصیص نیست من با مثلا این صورت مثلا خارج شد این ارز کردن بسید مالک هم پتوهش همیدون حالا مالک مثلا این شبه درش هست که مثلا پیغمبر اکلم وسیعت کردن این مسئله پیش مالک باشه تا یه هر حال ایناس که این تصور برای امه علیه هست مالک میگه چون پیغمبر اکلم نه کردن از سمن خمر و خمر و اینها اون رو بشت میکنن. اما پیغمبر جزی رو از, مش از کفار از یهود و نصارا گرفتن جزیه رو و این جزیه یک زمه بود مالی بود در ذمه اونها خب پولی که اینها داشتن پول خوک بود پول خیمزی پول خوک بود پول شراب بود پیغمبر اشوال نکردن پس وفا ذمه با پول شراب اشوال نداره اما غیر وفا ذمه اشوال دردن در محاول انمه رو درست کرده بودن و سزن ما بحث سوءزن و بحث اهل میزار که به سوءزن زن, سو زن نداریم. قم داره نوشته دلیلش نوشته. درست اون اهداف دیگری بوده که اینا اهداف سیاسی یا غیر سیاسی بدون اشتباه و گویا مثلا واقعا افرادی که ارزش وجودی ندارن در روز به مناسبت اجتماع اسموندن خب اجتماع ارزش وجودی انسان خارجی مسلک و غلام عبدالله نعباس واقعا خب یا در شجاعت و سهم سنن رسول الله رو کار به اهداف سیاسی امنی خاصی کسی بگه که امام صادق که حالا در مدینه هم بوده وقتی که امام کوچیک بوده هنوز بچهای تابعین و خود تابعین و بچهای صحابه رو امام دید هر از خودشون از بیت نبوت قدرت هستن پیدا هم که امام واقعا به اون تظاهر که صحابه هم امام واقع نیده بلدین که بعد پدرشون ایشون امام سجاد چه خب خوبم بعد سید و بعد عمیر. خب انسان این سلسله نگاه میکنه بگه این درست مثلا خیلی خوب سنت رسولان فقط اما ابو حنیفه که اسمش نعمانه پسر ثابت، پسر زوتی، حالا زوتی از کجا از خدا ببینه گفتن از کابل گفتن نشابور اسمانا خب یک که به چند شهر نسبت میدن واضحه منوش چیه حالا این آقا پدرش مثلا فرض کنیم که مسلمان شده اسیر شده برده شده اسلام و مرده آمده خودشی به یک عشیر اونم در کوفه اخیلی آدم کجاشو نگاه این بهتر سن نظر رسول الله در کو تا اون جعفر محمد با اون شرعی که دادن واقعا خیلی تکی ثریقیه این دیگه بحث سیاسی و گنده کردن نیست این همچه کسی را اتهام بگیم من بهتره به سن نظر رسول الله بایشان با میرستن تا جعفر محمد مثلا نمیخواد تصور چیز دیگه بکنن تصور خارجیش کافیه که تصور بکنه که مطلب چی اینها جای خودش استدلال علمیشون تمام نریه جای خودش گفتن در این جهت که اینها مطرح شدن رو اینجاات فاسد جی وقت علی حالت و عده‌ای هم از روایات خب این ما اعتقاد ما هست این هست البته ما عده‌ای از روایات عیناً اصرار داشتن که عده‌ای از احکام في کتاب علی ام به املاء رسول الله خاتم تعیین این بوده اینا این نبوده. علیه اصول که و قاعده و نه نه نه نه نه نه نه نه نه و اصول نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه مفرد مفرده یک قواعد عمومی داره تل به اون قواعد عمومی ما این مسائل بیان میکنیم این صحبت و یک مقدار زیادی هم تاکید کردن که اینها از امیرالمومنین هستش در اون کتابی که حضرت نوشتن اون دهی که از کتابی داشتن اجمالا توی مصادر عامه هم از همین حدیث من در مصادر شیعه میاد از ام سلمة نقل کرده که روز پیش پیغمبر منظوراً من تشرفش امیرالمومنین یک پوستی اومدن میونه هم جو صحبت میکنن حضرت اون پوست رو پر از نوشته کردن همه رو نوشتن تو اون پوست خب حتماً باید یه مثالی جدی بوده که ام سلمه نه فرنده ام سلمه به عربی که ولت بوده چه مطالبی بوده که حتی ام سلمه یک کلمه هم نقل نکرده خب مطالب خاصی بوده اجمالاً در این که علی علیه السلام یک خصایصی داشتن این رو نمیشه انکار کرد و خصایصشون را هم منوط به امیر المومنی سلام الله علیه کردن موارد زیادی اصلا از با باب تخصیص و نفس نیست به هر حال این راچه به کلام میشن از کردن ایشون با سواربندی نتیجه گرفتن که در جمعی اسوار هم بر تخصیص میشه لیکن ادهی از بزرگان بدون سواربندی جمعی را هم را تخصیص کردن دو تقریبش رو هم نهار کردیم یکیش این که چون تخصیص زیاده و نفس معونه زاده میخواد تخصیص اینقدر معونه قانونی اینقدر زیاد نیست از باب قاضی اول نایره خوشه به حمل لرمز یک تقریب قانونی هم ارز کردیم که تخصیص نسبتا آسانه و نسخ و لغوی حب احتیاج به معونه بیشتری داره پس بنابراین اون حمله بر تخصیص میشه یک راه دیگر قانونی هم کردیم که نسبت نسخ به تخصیص نسبت مرجیه جهتی به مرجیه دلالی است و ترجیح یک مراجع دلالی است مراجع دلالی همیشه مقدم است بر مراجع جهتی، پس بر نسخ مقدم خواهد این تقریر مرحوم عاضی یا قدس الله نفسه پس در این مسئله برای شما خودتون مراجعه کنن من برای تکمیل بحث یعنی که این بحث تمام بشه فردا یه مقدار از مصادیری رو که در مصادر اهل سنت آمده از اینا رو سابقا ما برای که یه روز آخر درس هست یه مردان اونها از همین علبه و چون خود اهلیشون نه هم اون زوابت مختلف نوشتن یه توضیحاتی اونجا اصلاح کرد.